آنجا که عشق غزل نیست که هماسه است هر چیز را صورت حال باجگون خواهد بود آنجا که عشق غزل نیست که هماسه است هر چیز را صورت حال باجگون خواهد بود زندان باغ آزاد مردم است و شکنجه و تازیانه و زنجیر نوهنی به ساحت آدمی که معیار ارزش اوست کشتار تقدس و است و مرگ زندگی است و آنکه چوبه دار را بیالایت با مرگی شایسته پاکان به جا دانگان پیوسته است آنجا که عشق غزل نه حماسه است هر چیز را صورت حال باش خواهد بود رسوایی شهامت است و سکوت و تحمل ناتوانی از شهری سخن میگویم که در آن شهر خدایید دیری با من سخن به درشتی گفتید خدایا به دو حرف تا تان هست <تصفح> دیگه ما خص میفهمم. خیلی مشارم.